سلام شما قسمت بیست و دوم پادكست الف دومین قسمت از فصل سوم رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است ما معتی خدادادی هستم، سازنده و راوی پادکست علف با دوستانم سعی می‌کنیم هر ماه یک نمایشنامه رو برای شما روایت کنیم. تو این قسمت اثری از نمایشنامه نویس مشهور آمریکایی نیل سایمون رو می‌شنوید. شنیدن این پادکست همیشه رایگان بوده و هست، اما برای حمایت مالی از تولید این پادکست، میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود قرار گرفته، هر مبلغی که خودتون مایل هستید از ما حمایت مالی کنید. همچنین برای حمایت از پادکست الف میتونید پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید یا در های اجتماعی به اشتراک بذارید. آدرس اینستاگرام پادکست الف توی توضیحات اپیزود هست. اونجا ما ممکنه سری اطلاعات اضافی در باره هایی که برای شما روایت می‌کنیم رو براتون به اشتراک بذاریم. اخبار پادکست رو میتونید دنبال کنید، تاریخ انتشار اپیزودهای جدید رو میتونید ببینید. و کلن دنبال کردن اینستاگرام پادکست سالف خالی از لطف نیست نمایشنامه قسمت 22 پادکست مشنک کاست. این نمایشنامه با نام کلپوک ها هم ترجمه شده تو متنی هم که تخمین برغایی برای ما زحمتش رو کشیده از هر دو اسم برای اشاره به نمایشنامه و در متن هم به عنوان معادلی برای کلمه فولز استفاده شده پس مشنک ها یا کلپوک پوکا هر دو دارن به اسم اوریژینال نمایشنامه اشاره میکنند. ما از دو ترجمه فارسی این نمایشنامه از انتشارات افراز با ترجمه شهرام زرگر با نام کلپوک و از انتشارات نیلا با ترجمه مجید مصطفی با نام مشنک ها برای نوشتن متن این قسمت استفاده کردیم. تدوین این اپیزود رو شکی اسدی انجام داده و ویرایش متن هم با مهدیس سفری بوده مثل همیشه از بچه ها تحمین تحمیل خیلی ممنونم که کنار من هستند و به انتشار این پادکست کمک می کنند قبل از شنیدن خود نمایشنامه اگر یکم نیل سایمون رو بشناسیم کمک می بدونیم با چطور نمایشنامه ای از چه کسی روبرو هستیم ماروین نیل سایمون نمایشنامه نویس فیلم نام نویس و نویسنده آمریکایی. جولای 1927 در خانواده یهودی در برانکس نیویورک متولد شد. اگر داستان زندگی سنلی کوبریک در میدنایت کس رو شنیده باشید، اونجا هم گفتیم که کوبریک هم مثل نیل سایمون در برانکس و در یک خانواده یهودی متولد شد. البته با یک سال تأخیر، یعنی کوبریک یک سال از نیل سایمون کوچیک‌تره. سایمون در دوران رکود بزرگ در شهر نیویورک بزرگ شد. خانوادهش مشکلات مالی داشتن و پدر و مادرش خوب با هم کنار نمی اومدن. کودکی خیلی خوبی نداشت ولی اغلب به سالن‌های سینما پناه می برد و فیلم‌های کمدی از چارلی چاپلین و باستر کیتون رو تماشا می‌کرد. و اونجا اونقدر بلند می خندید که گاهی از سالن بیرونش می‌کردند. بزرگتر که شد، اوایل مسیر شغلیش در دهه 50 و در برنامه‌های معروفی مثل یورشو شو و فیلسیبرز شو در کنار نویس های معروفی مثل وودی آلن کار میکرد با اینکه بعدها مسیرشون از هم جدا شد و آلن رفت سمت سینما و سایمون رفت سمت تئاتر نیویورک تایمز می این دو نفر احتمالاً در شکدهی کمدی آمریکا نقش برابری داشتند با اینکه سایمون در تلویزیون و هم در سینما مینوشت این نمایش نام نویسی و کار در برادوی بود که شهرت رو براش برمغان آورد اولی نمایش نامه سایمن به اسم بیا در شیپورت بدم که سال 1961 منتشر شد 678 بار در برادوی اجرا شد بعد از اون پا به در پارک 1963 و زوج عجیب و غریب 1965 رو نوشت که دومی برنده جایزه تونی شد سایمن از دهه 1960 تا 1980 کلی نمایش نوشت و اون سالا پادشاه بیچون چرای برادوی نیویورک بود سایمون 17 بار نامزد جایزه تونی شد که 3 بار این جایزه رو تونست به دست بیاره اگر علف رو دنبال کرده باشید احتمالا میدونید و شنیدید که ما خیلی به تونی اشاره کردیم و گفتیم که معادل همون اسکار سینما در تئاتر برای امریکایی ها همچنین برای نمایش بر جایزه تونی برنده جایزه پولیتسر هم شد در سال 1966 همزمان چهار تا نمایش روی صحنه داشتن اجرا می و در سال 1983 تنها نمایش نام نویس زنده شد که یک سالن تئاتر نیویورک به افتخارش نامگذاری شد سایمن در مجموع سی تا نمایشنامه نوشت یه تعدادی از نمایشنامه هاش اختباس موزیکال فیلم های معروف اون زمانه مثلا نمایشنامه "Promises, Promises" رو از فیلم آپارتمان بلی وایدر کرد تقریبا به همون تعداد نمایشنامه هاش یعنی سی تا فیلم نامه هم نوشت که اکثرا اقتباس از نمایشنامه های خودشه یکی از موفقترین این فیلم ها فیلم یکی از نمایش زوج عجیب اقتباس کرد و ازش فیلم معروفی به همین اسم با هنر نمای جکلمن هم ساخته شد. سایمن در سال 1983 با خانم جوان بیم که رقصنده بود ازدواج کرد و به گفته خود سایمن اگر این خانم به خاطر سرطان فوت نکرده بود تنها همسرش تا آخر عمر باقی میموند. جوان در سال 1973 به دلیل سرطان مغز و استخوان درگذشت. بعد از اون چهار بار دیگه ازدواج کرد که دوبارش با یه نفر بود. یعنی یه بار جدا شدند، سایمن رف با یه نفر دیگه ازدواج کرد، بعد دوباره برگشت با همین خانم ازدواج کرد، بعد دوباره از هم جدا شدند. نکته جالب در مورد نمایشنامه این قسمت ما، یعنی مشنگ ها، اینکه ظاهرا سایمن اون موقع داشته از همسر دومش یعنی مارشا میسن جدا شده و توافق کرده بودن به عنوان مهریه هرچی سایمن از نمایش این بعدیش به دست آورده هرچه آورده مالی براش داشته رو بده به همین خانم مارشا سایمن هم نامردی نکرد و تا تونس نمایشنامه رو بد ن نوشت همین کار مشنکار تا خیلی مطرح و معروف نشه اما بازم این نمایشنامه تبدیل به یکی از کارهای شاخصش شد و در اولین دوره چهل شب روی صحنه رفت. کلن مشنک ها یا کلپوک ها اثری متفاوت از بقیه آثار سایمنه. اکثر کارهای سایمن در ستینگ آمریکایی با تعداد کارکترهای کم میگذره در حالی که نمایشنامه مشنک ها توی روستایی در اوکراین اتفاق می‌افته. با این حال باز هم همون سادگی و شیرینی بقیه نمایشنامه های دیگه سایمون رو در خودش، اسم اوکراین اومد و به همین بهانه ما این قسمت رو تقدیم می‌کنیم به تمام کسانی که درگیر جنگ با دشمن خارجی یا حاکمان خودشون هستند دوون بیارید، بجنگید و نذارید بقیه عمرتون هم از دست بره بریم سراغ قسمت 22 پادکست علف، نمایشتامی از نیل سایمن، مشنگ ها ساعت 9 صبح روزی در سال 1890 معلم جوونی به اسم لئون تولچینسکی با چمدون کهنه و یه دسته کتاب زیر بغلش وارد روستای کلیچینکوف میشه به نظر راضی و خوشحال میاد هم کلیچینکوف ازش خوشم اومد یه روستای آروم و با باسفا که زیادن بزرگ نیست یه جای حسابی واسه یه معلم تازه وارد که کارش رو شروع کنه صدای شیپور از دور به گوش میرسه سنتسکی چوپان با شیپور وارد میشه روز بخیر شما نمیدونید سر جین گوسفنده من چی اومده؟ لون میگه که نه نمیدونم سنتسکی میگه خب اگه دیدیشون از طرف من بهشون بگو چوپان خیلی دنبالشون میگرده بهت بگن کجان تا من برم بیارمشون دست درد نکنه. لئون میپرسه اسمتون چیه؟ اسنتسکی اسمش رو میگه. لئون میگه خب اسم کوچیکتون چیه؟ اسنتسکی به فکر فرو میره. بعد میگه به همین زودی لازمش داری؟ لئون جواب میده مهم نیست، فراموشش کن. اسنتسکی میگه که فراموش کردم. لئون جواب میده من لئون استپنوویچ تلچینسکی هم. معلم جدید مدرسه. با خوشحالی میگه که جدی جدی از آشنایی با شما خیلی خوش وقتم لئون ستپنوویش تولچینسکی. من فلانی فلانی سنیسکی خوشحالم شما اینجایید. بالای هزار نفر اومدن ولی یه نفرشونم تا صبح دووم نیاورد. ما یاد بگیر نیستیم. ما مردم روستا هممون کله پوکیم میون همه شهرها و روستاهای لهستان کل پوک تر از ما پیدا نمیشه لئون میگه منظورت روسی است اسنتسکی میگه حالا هر جا گفته باشم همهشون آدمای خوبیان. ولی یه مخ درست و حسابی توشون پیدا نمیکنی لئون تعجب کرده میگه داره میگی همه مردا، زنا، بچه ها میپره وسط حرفش و میگه آره همه مشنگن از جمله خود من ده دقیقه دیگه با هم صحبت کنی حالیت میشه لون میگه منو دکتر زابیرتسکی استخدام کرده که به دخترش درس بدم اسنسکی میزنه زیر خنده و میگه درس بدی به دخترش محال ممکنه دختر خنگ خنگه نوزده سالشه ولی تازیات گرفته بشینه. گاو و از اردک تشخیص نمیده. البته خب کار راحتی هم نیست. لیون آگهی رو از جیبش بیرون میار و با خودش میگه گفتم همه کلمه های آگهی استخدام قلط قلوت نوشته شدن و. حتما دکتر همه اینا رو به هم توضیح میده. رو به اسنتسکی میکنه و میگه شما خیلی کمک کردین همشهری. از صحبت با شما محفوظ شدم. هر دو رو ترک میکنن. اسلوویچ قصاب جارو به دست میاد جلوی در و آشخالا رو جارو میکنه توی مغازش میشکین پستچی هم وارد میشه و با هم خوشو میکنن قصاب میگه روز آفتابی قشنگیه نه پستچی میگه ها راستش نمیدونم هنوز وقت نکردم به آسمون نگاه کنم همون لحظه به آسمون نگاه میکنه و میگه آها آره حرف نداره قصاب میگه من نامه ندارم خواهرم توی اودسا حالش خوب نیست امیدوار بودم خبری ازش بشنوم پسچی میگه او بعید از راه به این دوری بشه چیزی شنفت ولی شاید نامه ای نوشته باشه سب کن داره توی هاش رو میگرده که ینچنای دستفروش وارد میشه ماهی دارم ماهی تازه صفر ماهی خوشخوراک صبحتون بخیر آقایون یه تیک ماهی خالدار میخواید توی چرخ دستی ینچنا به جای ماهی پر از گله اسلوویچ قصاب میگه کدوم ماهی اینا که گلن ینچنا میگه آخه امروز چیزی توی تور ماهیگیرا گیر نیفتاد ولی خب من چرا ضرر کنم پستچی میگه اسلوویچ نامه ای از خواهرت ندارم ولی عوضش یه نامه خوب از دخترم کفاش دارم میخوای ینچنا میگه باورتون میشه دختر من یه ساله برام نامه ننوشته چی میگه مگه دخترت پیش خودت نیست؟ ینچنا میگه خوشبختانه چرا؟ وگرنه خبری ازش به هم نمیرسید. لئون وارد میشه. صبح بخیر. او چه گلای خوشبویی. شاید بد نباشه برای کار فرمان ببرم. خانم لطف میکنید قیمتشون رو به من بگید؟ ینچنا میگه صفر ماهی دو کپک کپور سکوپک. لئون حیرت زده پول گلها رو میده و میگه ممکنه یکی لطف کنه آدرس خونه دکتر رو به هم بده هر کدوم از اون سه نفر به یه سمت اشاره میکنن لعن سرش رو میخارونه و میگه که فکر کنم بهتره به اون سمتی برم که کسی بهش اشاره نکرد و میره توی خونه دکتر زابیرتسکی دکتر داره به زربان قلب قاضی گوش میکنه هم جالبه به سلامتی 80 سال عمر می قاضی میگه خب همین الانش هم نه ساله. دکتر میگه خب یه سال رویایی پیش روته نسخه نمیخوای. قاضی میگه واسه چی؟ دکتر میگه چه میدونم بعضی و نسخه دوست دارن. بیا اینو بده به داروخونه چی؟ یه چیزی انتخاب کن که دوستش داشته باشی. روزی سه تاشو با یه کمی آب بخور. خوش اومدی. لننییا همسر دکتر شتابان وارد میشه. نیکی، نیکی اون اینجاست اومده شاید این همون باشه شاید بالاخره این یکی مایه نجاتمون باشه دکتر میپرسه کی اومده کیه که مایه نجاتمونه لنیا همسرش میگه که همون چیز جدید اه، اه، اه، چی بهشون میگن همونی که یکیشونو قبلا داشتیم ولی حالا دیگه نداریم دکتر میگه فهمیدم همونا که از آدم سوال میپرسن و اگه آدم ندونه میگن چرا نمیدونی دفعه دیگه نشونت میدم فهمیدم پوبلنیا خب بیارش تو راهو نشونش بده منم به درگاه خدا دعا میکنم این یکی دیگه همونی باشه که اهالی روستا رو از این بلای خانمان سوز این این نگین نجات میده نگین بود لنیو میگه شایدم تمرین بود منظورشون نفرینه ولی کلمهش یادشون نمیاد توی متن اصلی اینجا به جای کرس کلمه نرس به کار میره ولی خب برای اینکه ترجمه توی زبان فارسی معنی بده از نگین و تمرین به جای کلمه نفرین استفاده شده. صدایی در میاد و لنیا درو در باز میکنه. لئون پشت دره دکتر زبیرسکی مادام زبیرسکی خیلی خوشحالم که اینجا. من لئون استپانوویچ تولچینسکی هستم، معلم مدرسه. دکتر میگه آها معلم. معلم بود اون کلمه اون یه معلمه شکر خدا که معلم اینجاست لئون راضی و خوشحال تشکر میکنه و گل هایی که خریده رو به خانم خونه میده لنیا میگه وای ماهی سفید امروز اینا رو توی بازار دیدم لئون حیرت زده سیامک انصاری به تماشا چیان نگاه میکنه بعد میگه خب اول یه چند تا که میخوام ازتون بپرسم دکتر میگه سوال آها این همونیه که اونا میپرسن استاد تولچینسکی یه لطفی میکنین از ما یه سؤال بپرسین؟ هر سؤالی که دلتون خواست این برای ما به منزله تقدیره لئون میگه هر طور میلتونه هدف از خلقت انسان چیه؟ دکتر میگه عجب سؤالی لنیا تا حالا همچین سؤال قشنگی به گوشت خورده بود؟ وای وای زبونم قاصر از این سؤال لئون میگه خب میخوای جوابش رو بدونید دکتر میگه نه دیگه امروز نه ممنون برای امروز کافیه تو کل عمرمون حتی خوابشم نمیدیدیم یه همچین سوالی از ازمون پرسیده بشه لئون میگه متوجه نمیشم دکتر میگه که اگه از نگین خبر داشتید متوجه میشدید لنیام میگه نه منظورش خورجینه از همون که خدا سر مردم نازل میکنه لئون میگه منظورتون نفرینه دکتر میگه نفرین آفرین میدونستم نزدیک شدی ما؟ تا حالا از نفرین کلچینکوف چیزی شنیدین؟ دو سال پیش یه نفرین دامن همه مردا و زنا و بچه ها و حتی نصدایی بعدیشونو گرفت و باعث شد قط فضله موشم حالیشون نشه. لون میگه دکتر، من به نفرین اعتقادی ندارم. نفرین مال مالقصه پیرزناست دکتر میگه آره، توی نیوچکا، همه پیرزنا دوم دارن اینم نفرین اوناست خوب ولی نفرین ما با اونا فرق میکنه تموم اسناد و مدارکش توی این کتاب نفرین نامه هست و کتاب رو به لئون میده لئون از روش میخونه روز دوم آوریل 1691 در روستای کلچینکوف دو جوان در دام عشق هم گرفتار شدند پسر جوان و خوشتیپ ولی کشاورز آمی و بیسوادی بود به اسم کازیمیر یوسکوویچ. دختر هم دختر فهمیده ترین آدم روستا میخائیل زابیرتسکی بود. دکتر میگه زابیرتسکی؟ این اسم قبلا هم شنیدم. رو در خونه در و همسایه ها دیدمش. لیون میگه بله. رو در ورودی خودتون دیدیش. اسم خود شما زابیرتسکیه. دکتر میگه صبر کن. این یعنی مرد جوان توی نفرین امکان داره ربطی به در ورودی خونه ای ما داشته باشه لئون میگه که اسم دختر جوان توی کتاب سوفیا زابیرتسکیه میشه بپرسم اسم دختر شما چیه؟ دکتر میگه سوفیا لعون میگه سوفیا مثل اسم دختر توی نفرین نامه دیویس سال پیشه دکتر میگه من که بعید میدونم دخترمون در مورد سنش دروغ گفته باشه. لئون به خوندن از روی کتاب ادامه میده. وقتی پدر تحصیل کرده سوفیا خبردار شد که کازیمیر بی سواده است، دیدار سوفیا را با او ممنوع کرد. کازیمیر بیچاره گور خودش را کند و خودش را زنده آنجا دفن کرد. به محض اینکه این خبر به پدر کازیمیر رسید، فریاد زد. الهی دختر میخائیل زابیرسکی قاتل تنها پسرم اصیر جهلی شود که پسرم به گناه آن کشته شد. الهی حماقت و خرفتی مغزش را ببلد. الهی بچه هایش هم به همین نفرین گرفتار شوند. الهی هر کسی توی کلچینکوف متولد شود در جهل به دنیا بیاید و در جهل از دنیا برود. لئون رو میکنه به تماشاگره. خب. حالا روشن شد اینجا چه خبره اولین عکس عمل من وحشت بود دومیشم وحشت بود آموزش دادن یه چیزه اما باطل کردن نفرین یه چیز دیگه رو به دکتر و همسرش میگه بهتون قول میدم این نفرین رو بیاثر میکنم باید همین الان دست به کار بشیم دلم میخواد اول از همه با دخترتون سوفیا صحبت کنم دکتر سوفیا رو صدا میزنه و سوفیا وارد میشه لئون به محض اینکه سوفیا رو میبینه از خود بی خود میشه اما خودش رو جمع میکنه و میگه چرا نمیشین دو دوشیز سوفیا با احتیاط میشینه وقتی میشینه دکتر همسرش رو در آغوش میگیره و دوتایی بالا پایین میپرن موفق شد بشینه موفق شد دیدین چه قشنگ نشست؟ لون میگه آره خیلی قشنگ بود دو ز... زابیرتسکی اجازه دارم سوفیا صداتون کنم سوفیا سردرگم تکرار میکنه سوفیا اسم خودش رو تکرار میکنه دکتر میگه بله عزیزم این اسم توئه لنیا به دخترش میگه که بگو بله بگو بله بگو بله میتونین سوفیا صدام کنین لئون میگه باید بذاریم این دختر خانم خودش جواب بده بعد بدروم کنه به سوفیا و بهش میگه من خیلی دلم میخواد با شما دوست باشم میتونم ازتون بخوام که سوفیا صداتون کنم سوفیا گیج و مبهوت نگاه میکنه بعد نامطمئن میگه که من, من خیلی خوشحال میشم که سوفیا صدام کنین لیون میگه که من از راه خیلی دوری اومدم تا بهتون آموزش بدم و کمکتون کنم فکر میکنم درون شما یه زن باهوش و با درایت وجود داره اما روی اون هوش سرشار یه ابری کشیده شده من میخوام این ابر رو کنار بزنم ولی به کمک شما احتیاج دارم سوفیا کمکم میکنی؟ سوفیا میگه بله میتونید صدام کنین سوفیا دکتر با زغغ میگه بازم تونست این کارو بکن. وای دو بار پشت سر هم گفت لئون بیچاره که کم آورده به خودش میگه آروم باش آروم باش به خودت مسلت باش لئون بعد رو میکنه به سوفیا و بهش میگه که دلم میخواد چندتا سال کوچولو ازت بپرسم به قول میدم سخت نیست خب رنگ مورد علاقت چیه سوفیا میگه که رنگ مورد علاقه لئیام میگه چرا اینقدر بهش سخت میگیرین اینجا که دانشگاه نیست لئون سوال رو تکرار میکنه. سوفیا منو من کنان میگه که رنگ مورد علاقه ام زرد. لئون میگه زرد. رنگ مورد علاقه هش زرده. حالا چرا رنگ زرد رو دوست داری؟ سوفیا میگه که چون زیاد بن انگشتام نمیچسبه. سوال و جواب های آقا معلم با سوفیا ادامه پیدا میکنه. سوفیا جواب های عجیبی میده اما بازم لئون امیدواره با تلاش بتونه بهش چیزایی یاد بده. در نهایت قرار میشه لئون فردا صبح بیاد تا دوباره آموزش رو ادامه بدن. سوفیا بیرون میره. دکتر میگه تا به حال سوفیا رو انقدر با تراوت و بشاش ندیده بودم. لینیا فکر میکنی من دارم به چی فکر میکنم؟ لینیا میگه من حتی نمیتونم فکر کنم خودم دارم به چی فکر میکنم این چه سوالیه میپرسی دکتر میگه به نظر من صفیه های ما داره از این آقا معلم جدیدش خوشش میاد لون میگه اگه این حقیقت داشته باشه پس کسی که روبروی شما بای ساده سعادتمند ترین مرد دنیاست بگید ببینم کسی توی زندگی دخترتون نیست خاستگاری عاشقی چیزی دکتر میگه ما در مورد اینجور چیزا صحبت نمی کنیم. هیچ نیست. حتی اون. لئون می اون کیه؟ دکتر میگه بهت میگم ولی نباید به کسی بگی من بهت گفتم. ها. تا اسم کند گریگور کلچینکوف رو شنیدی؟ اون یکی از اوناست. یکی از همونا که ما رو دوچار نفرین کرد. آخرین نفر از خاندان یوسکوویچ. اون دو بار در روز خاستگاری سوفیا میاد. شیش و 15 صبح. با 7 و 20 دقیقه شب بهش هم علاقه نداره فقط میخواد انتقام بگیره اگه یه زابیرسکی با یه یوسکوویچ ازدواج کنه نفرین به آخر میرسه لئون میگه خب سوفیا هم بهش علاقه داره دکتر میگه اون سال هاست که میگه نه ولی دیگه بیشتر از این نمیتونه مقاومت کنه طفله بیچاره دلش میخواد یه روزم شده بیشتر بتونه بخوابه داره چاره میکنه به اون ساعت 6 15 دقیقه که این به خواستگاریش میاد لئون میگه اگه یه رقیب عشقی داشته باشه حتی بیشتر از قبل مصمم میشه دل صوفیه رو به دست بیاره. داره میره بیرون که دکتر میگه راستی دوباره از امون سآل بپرسید. لئون میگه خب هدف از خلقت انسان چیه؟ دکتر با شادی و سرخوشی جواب میده؟ آره جواب این سال رو میدونم. جوابش دوازدهه. لئون مات و مبهوت به دکتر و بعد به تماشاچی ها میکنه. دکتر میگه اشتباه گفتم چهاردهه ببین از صد کمتر اینو میدونم اونقدران مشنگ نیستم که هشتاد و سه چهل و شیش بیرون میاد و تو کوچه فریاد میزنه آخه رو به تماشاگران میگه که گمونم بهتر سوفیا رو فراموش کنم و فرار کنم اول میخواستم نفرین رو باطل کنم اما وقتی گفت دوازده دیگه فهمیدم کار از کار گذشت. داره رد میشه که سوفیا رو تو ایوون میبینه. سوفیا میگه میدونم سالها پیش اتفاقی افتاده که ما نمیشه من بدونم سالها پیش چه اتفاقی افتاده. کاش شما منو نه اینجوری که الان هستم بلکه اونجوری که میتونستم بوده باشم میشناختین. لون میگه ولی اگه شما اینجوری که الان هستین نبودین دیگه منم اینجا نبودم که کمکتون کنم تا بشین همونی که میتونستین بوده باشین. سوفیا میگه دیگه باید برم. همه چی به فردا بستگی داره. اگه شکست بخوریم دیگه نباید همدیگه رو ببینیم. لئون میگه نباید همدیگه رو ببینیم منظورت چیه؟ سوفیا میگه من هیچ وقت منظورم رو نمیدونم. من فکرایی دارم ولی انگار وقتی با لبام تماس پیدا میکنن قیبشون میزنه. لئون میگه من اگه قسمت میشد به لبت برسم، اصلا غیبم نمیزد سوفیا میگه دلت میخواد. لئون میگه با تمام وجود. سوفیا میگه نه، فقط لبت کافیه. لئون با تمام سرعتش از بالکن بالا میره و با سوفیا همدیگر رو با حرارت میبوسند بعد سوفیا میره که بخوابه. صدای رعد و برق شدیدی میاد. استنسکی چوپان میدوه میاد تو صحنه. و میگه که باز کونتیوسکویچ به همون قذب کرد و میخواد رومون آب بپاشه. میشیکین میگه میدونستم. هر وقت من گاومو میشورم اون رومو آب میپاشه. لئون سعی میکنه در مورد بارون توضیح علمی بده که چرا به وجود میاد ولی کسی گوشش بده کار نیست. صدای ناقوس کلیسا میاد. اسنتسکی میگه اوه اوه اوه وقتی خاستگاری کوویچ میشه این دفعه دختری یه بله بگه و هممون دوباره باهوش بشیم؟ لئون با عصبانیت میگه منظورت اینه دلتون میخواد سوفیا باهاش ازدواج کنه؟ اسنتسکی میگه که فقط اگه خودش بخواد ولی خیلی خوب میشه دوباره اسم کچیگم یادم بیاد. کنت گرگور یوسکوویچ با گل و شیرینی وارد میشه. میگه که سوفیا صوفیای شیرین من. وقت بیدار شدن عزیز دلام سنگریز ای برمیداره و به سمت بالکن پرت میکنه صدای شکستن شیشه میاد و بعد دکتر با شم وارد ایوون میشه گرگور میگه من برای خاستگاری اومدم دکتر میگه خب یه خورده دیر تشریف آوردید من 26 سالی میشه ازدواج کردم همسر دکتر وارد میشه میگه سوفیا دستش بنده در آب می ریزه رو پرده ها پردهها آتیش گرفتن سوفیا وارد میشه. میگه که چه خبره پاپا؟ دکتر میگه بیدارت کردیم عزیزم. صوفیا میگه نه داشتم زیر نور پرده ها مطالعه میکردم. گرگور میگه من باید عقلم پارسنگ برداره که بخوام با این خانواده وصلت کنم. دکتر میگه عزیزم کونت یوسکویچ میخواد ازت خواستگاری کنه. بفرمایید کونت گرگور میگه بسیار خوب. صوفیا با من ازدواج میکن صوفیا میگه منو ببخشید جناب یوسکوویچ آخه ازدواج قدم بزرگیه دلم نمیخواد حالا که اینقدر عقل و هوش ندارم که بدونم پام رو کجا میذارم همچین قدمی بردارم شب بخیر آقا شب بخیر بابا دکتر میگه شب بخیر پسرم مطالعات که تموم شد پردارم خاموش کن همه میرن تو خونه گرگور میگه که داشتن یه همچین فامیلایی از خود نفرینم بدتره لئون میگه از خدا بخواهم چین اتفاقی نیفته. گرگور میگه میدونم تو کی هستی. اما معلم جدیدی از که اومدی اینجا تا با تلاش نفرین کلچین کفر رو بیاسر کنی. لئون میگه درست همونطوری که شما تلاش مزبوحانه میکنید تا دل سوفیا رو به دست بیارید. گرگور میگه خیلی زبونت درازه ها. نفرین فقط وقتی باطل میشه که یا تو بتونی بهش چیزی یاد بدی که نمیتونی یا اینکه اون با من ازدواج کنه. لئون میگه که انگار اونم با شما ازدواج نمی کنه. چرا دنبال یه دختر دیگه نمیرین؟ گرگور میگه برای اینکه سوفیا خوشگله. دخترای دیگه روستا رو دیدین؟ همه‌شون شبیه منن. لئون میگه که انگار شما با این همه جلال و جبروت شدیداً کمبود اعتماد به نفس دارین. متاسفم. روز خوش. گرگور میگه روز آخر تو هم خوش. میدونی که اگه تا آخر یه روز کامل نتونی کاری کنی؟ و حوش اونو برگردونی مجبوری روستای ما رو ترک کنی حتی اگه یه ثانیه بیشتر بمونی خودت هم گرفتار نفرین میشی بعد رو میکنه به تماشاچی ها و به تماشاچی ها میگه که عاشق این قسمتشم. لئون لعون خودشو نمیبازه و میگه که عاشق صوفی است. کنت میخنده و میگه تو این روستا عشق وجود نداره این هم یه بخشی از نفرینه بعد کنت میره لئون معیوس و ناراحت میگه. یعنی اگه من تو 24 ساعت نتونم چیزی به سوفیا یاد بدم، سوفیا نمیتونه عاشقم بشه؟ سوفیا میاد روی ایوون. میگه که لون من نمیتونم باهوش بشم. تو باید همین الان از اینجا بریم لون میگه بدون تو هرگز. سوفیا میگه پس منم با خودت ببر. همین امشب. این تلس شکستنی نیست. ولی میتونیم بریم توی باتلاق با هم زندگی کنیم. خذا و سرخس بخوریم. من پیر و زشت و احمقتر بشم و هیچ وقتم عاشقت نشم. ولی دستکم با هم دیگه این. لیون میگه خب این دقیقا اون چیزی نبود که تو ذهن منه. نه سوفیا. من بهت آموزش میدم. من این نفرین رو بی اثر میکنم. قول میدم. صوفیا میگه اوه لیون کاش میتونستم دوست داشته باشم. اگه فقط واسه یه روز میتونستم حس دوست داشتن تو رو تجربه کنم صد هزار سال نفرین نفرینو تحمل میکردم. شب بخیر لئون خدا نگهدارت و میره لئون با خودش میگه اون نخواست دوست داشته بشه خواست بدون چطور میتونه عشقش رو به دیگران بده فکر کنم جای خیلی خاصی سرگردون شدم من اینجا رو دوست دارم حتی کنت یوسکوویچ رو خدایا کمکم كن این نفرین رو باطل کنم بعد رو میکنه به تماشاچیا و میگه از شما هم خواهش میکنم هواستون جمع باشه هرچی نباشه شما هم الان توی كلینچکف نشستید بعد از گفتن این جمله لئون هم میره فردای اون شب صبح زود در خونه دکتر به صدا در میاد و لئون در حالی که از نفس افتاده سر میرسه. میگه که هیچ میدونین ساعت چنده دکتر میگه ده دقیقه به شیش لئون میگه هشت روب دکتر میگه یعنی یه روب به نه هر کدوم خواستین انتخاب کنین ده و بیست دقیقه یازده و چل دقیقه لئون شتاب زده و پریشون میگه که کنت گفت من بعد از ورودم به کلینچیکوف فقط 24 ساعت مهلت دارم تا نفرین و باطل کنم. من دیروز دقیقاً سر ساعت نه اومدم اینجا من ایش اینه که الان فقط یه ساعت وقت دارم حتی یه ساعتم وقت ندارم همین الان یه دقیقه تموم صرف این شد که بهتون بگم وقت زیادی برام باقی نمونده. خدای من کمکم کن. بگین سوفیا بیاد ازتون خواهش میکنم. عجله کنید سوفیا با عجله وارد میشه صبح ب مامان صبح خیر پاپا پا. صبح خیرست داد. دکتر میگه هر ستاره درست گفتی. امروز روز توه. لئون محترمانه با عجله دکتر و زنش رو بیرون میفرسته. رو میکنه به سوفیا. سوفیا، دیشب واسه من قطعی شد که منم مثل بقیه شکست میخورم. ولی امروز با دیدن چشمای تو میدونم که بدون تو زندگی کردن واسه من معنایی نداره. نباید به شکست فکر کنیم. نمیتونیم از پس ناامیدی بر بیاییم. فقط یه معجزه میتونه نجاتمون بده سوفیا ولی حسابی و جانانه باید تلاش کنیم اون موجزه اتفاق بیفته سوفیا میگه که موجزه چی هست لئون میگه موجزه آرزوییه که خدا برآورده کنه ولی توی معجزه ای سوفیا سوفیا میگه که منظورت اینه که من کار خدام لئون میگه تو یکی از شکوه منترین لحظات کار خدایی باید عجله کنیم سوفیا این کتاب مقدماتی ریاضیه که مسائل ریاضی ساده رو به بچه های خیلی کوچولو آموزش میده. سوفیا میگه فکر میکنی واسه من خیلی پیشرفته است؟ لون میگه گمون نکنم. از این کتاب ساده تر دیگه نمیتونیم پیدا کنیم. صفحه اول کتاب رو باز میکنه و توش عدد یک بزرگی صفحه رو پر کرد. میگه که یک یه رقم یه حرف یه علامت واسه هر چیز تک. یک انگشت، یک سوفیا، یک لئون. یک کتاب. حالا یک به علاوه یک میشه دو. میشه اینو برام تکرار کنی سوفیا؟ یک به علاوه یک میشه دو. تکرار کن. آره آره عالیه. خیلی بهت افتخار میکنم سوفیا. سوفیا همینطور چیزایی که لئون میگه رو تکرار میکنه بعد میگه میشه بریم سراغ تاریخ لطفاً؟ امیدوارم توی اونم بتونم مثل ریاضی خبره بشم. لون میگه خب راستشو بخواهی گمون نکنم هنوز توی ریاضی خبره شده باشی. ادامه میدیم. یک به علاوه دو میشه سه. سوفیا میگه کارم با یک به علاوه یک تمومه؟ لون میگه آره به شرطی که جوابشو حفظ کنی. سوفیا میگه قبلا جوابشو میدونستم. لازمه بازم یادم بیارم؟ لون میگه البته باید برای همیشه حفظش کنی. سوفیا میگه که یعنی همیشه ازم میپرسی یک به علاوه یک چند میشه؟ لئون میگه نه. یه بار به هم میگی بعدش میریم سر وقت یه چیز دیگه. سوفیا میگه تو میدونی یک به علاوه یک میشه چند؟ لئون میگه البته که میدونم. سوفیا میگه پس چرا باید من بدونم؟ تو که اینقدر دوست‌عمدی لا بود اگه ازت بپرسم همیشه جوابش رو به هم میگی. میگه ولی من همیشه این دوربراان نیستم که ازم بپرسی، هر وقت دیگران ازت بپرسم باید خودت جواب بدی. سوفیا میگه از دستم عصبی تا وقتی ازم این جورسالو نپرسیده بودی مرتب حرفای عاشقانه و قشنگ به میزدی. باهوش شدن اینطوریه لون به خاطر اینکه عصبی شده یا حداقل سوفیا حس کرده عصبیه معذرت میخواد و برمیگردن سر درس که باز سوفیا میگه، بچگیات از چه خوشت میومد؟ اومد لون میگه من کنجکاف بودم برام سوال بود که چرا روی زمین زیاد شدیم یا هدف از خلقت بشر چیه؟ سوفیا باید سوال کردن از منو تموم کنی چیزی نمونده وقتمون تموم بشه سوفیا میگه که پس من چجوری باید یاد بگیرم لون میگه تو باید سوالایی بپرسی که من می خوام نه چیزایی که دلت میخواد صوفیا میگه: پس من فقط چیزایی رو یاد میگیرم که شما دلتون میخواد چرا نباید چیزایی رو یاد بگیرم که خودم دلم میخواد. لئون میگه: چون چیزایی که تو دلت میخواد بدونی هیچ ارزش علمی نداره. چیزایی رو که من دلم میخواد یاد بگیری، دانش پذیرفته شده است. صوفیا میگه که این که تو بچه بودی چطوری بودی، دانش پذیرفته شده نیست. لئون میگه: نه، ارزشی نداره. صوفیا میگه: ولی خیلی جالب تر از چیزیه که ارزش و اعتبار داره. دکتر و همسرش بیرون در ایستادن و دارن به کلاس آموزشی یواشکی نگاه میکنن. تو این لحظه لئون داره از شدت ناامیدی سرش رو به زمین میکوبه. دکتر میگه هم hm, گمونم معلمه داره بهش ژیمناستیک یاد میده. میشکین کین چی وارد میشه و میگه که برای آقا معلم یه نامه فوری داره. دکتر میگه یواش؟ اینجا حریم مدرسه است. لئون بیرون میاد و رو به دکتر میگه: من وقت زیادی ندارم، باید اینو فوری ازتون درخواست کنم. چون ممکنه بعداً واسه این کار هوش و حواس درست حسابی برام نمونه. به خاطر دلبستگی عمیق و مهار ناپذیر من به دخترتون سوفیا، مایلم سوفیا رو ازتون خواستگاری کنم. من این درخواستو الان که هنوز عاشقشم مطرح میکنم. دکتر میگه: پس اسمشو نبر چی؟ میدونین که همونی که بالای تپه است همونی که آب میپاشه پایین اسنیتسکی میگه که راست میگه اون هیچ وقت به یه همچین وسعت رضایت نمیده میشکین میگه صبر کنین یه راهی وجود داره اگه یه غریبه قبل از اینکه مثل ما بشه با یکی از اهالی کلینچیکوف ازدواج کنه میتونه اونو با خودش از اینجا ببره دکتر میگه من اینو نمیدونستم میشکین پستچی میگه آره این بندو دو سال پیش اضافه کردن که هیجانش بیشترش لئون با ناامیدی به سوفیا میگه متاسفم فکر نکنم بتونم کاری کنم نفرین باطل چه اما ترکت هم نمیکنم. کنم همینجا پیشت میمونم سوفیا مخالفه نه لئون فرار کن و زندگیت رو نجات بده جاهای دیگم دخترای خنگی هستن که میشه آشقشون شد صدای ناقوس به گوش میرسه لئون میگه خوب گوش کن ببین چی میگم از ته دل عاشقتم ممکنه دیگه نتونم این رو به زبون بیارم. برای همین حرفایی که میزنم رو به خاطر بسپار. تمام عشقی که میتونستم بهت بدم رو باید توی این لحظات آخر فشرده کنم. با صدای ناقوس میاد. دکتر میگه باشه باشه اجازه میدم با هم ازدواج کنید. با صدای ناقوس میاد. با آخرین صدای ناقوس لون سر جاش بی حرکت میشه و توی چهرش توی چشماش حالت آدمای مشنگ پیدا میشه اسنیتسکی چوپون میگه که توی چهرهش یه چیزی می‌بینم که قبلاً هم دیدم هیچ مشنگی مثل یه مشنگ جدید نمیشه دکتر میگه مرد جوون شما هنوزم میخوایی با دختر من ازدواج کنی لئون میگه او نه آقا شما نسبت به من خیلی لطف دارین این افتخار از سر منم زیاده میشیکین پوست به لئون میگه اگه یه وقت این نامه فوری رو خواستی بهم بگو بدونم. دیگه هیچی توی زندگیت اونقدر فوری نیست. نامه رو توی کیفش میذاره و میره. دکتر میگه خب مرد جوون حالا برنامه چیه؟ لئون میگه مطمئن نیست. دکتر میگه به نظرم بهتره بری توی کار سیاست. گمونم الان با این وضعت به درد همین کار میخوری. لئون میگه آخه سیاست لباس نو میخواد. وقتی همه متفرق میشن، لئون رو میکنه به سوفیا و بهش میگه: سوفیا، عقل من هنوز سر جاشه. فقط خودمو به حماقت زدم. نفرین روی من اثر نکرد. وقتی آخرین ضربه ناقوس خورد و هیچ اتفاقی نیفتاد، فهمیدم تا به خودت اجازه ندی، نفرین رود اثر نمیکنه. متوجه میشی؟ سوفیا میگه: همه رو فهمیدم غیر از توزیه. لئون میگه یه چیزی بهم به الهام شده که میتونه نفرین رو باطل کنه و همین شما رو نجات بده. تو باید با یوسکوویچ ازدواج کنی. سوفیا میگه هنوزم خودتو زدی به حماقت؟ لئون میگه نه نه نه سوفیا منظورم کونت گرگور نیست تو باید با من ازدواج کنی. من یوسکوویچ میشم. میفهمی؟ مراسم عروسی فردا برگزار میشه. فردا نفرین بی میشه. با عجله میره تا یوسکوویچ رو پیدا کنه. یوسکوویچ روی صحنه میاد و با تماشاگرها حرف میزنه. منو میگفت: شما اونو بیشتر از من دوست دارید، نه؟ ای بابا، من حاضرم تمام ثروتمو بدم تا قهرمان داستان بشم. اون وقت دیگه لازم نیست این رخت و لباس مسخره رو بپوشم. ولی شما که به حرفم گوش نمیدید. شما فکر و ذکرتون اینه که اون دوتا بچه به هم برسن. داره میره که لئون وارد میشه. منو یادتون میاد کونت فلانی فلانی تولچینسکی هم. خواستم بدونید با اینکه من عقل و شعورمو از دست دادم اما احساساتمو ندادم. ناخواسته حرفای شما رو شنیدم. ناراحتم هم میبینم محبوب نبودن اینقدر ازیتتون میکنه. گرگور میگه اینا همه حرفه. تام هم از من خوشت نمیاد. غیر از اینه؟ لئون میگه ازتون بدم هم, هم نمیاد. گرگور میگه یعنی دوست هم داری؟ لاون میگه نزیاد کنت رو به میگه که نگفتم لاون میگه آخه شما هیچ وقت سعی نمیکنید دل مردم رو به دست بیارید چرا اینطوری گرگور میگه نمیدونم گمونم اینطوری تربیتم کردن از وقتی علف بچه بودم پدرم بهم به یاد داد که اگه میخوای روی این مردم نفوذ داشته باشی اصلا نباید باهاشون مهربون باشی همیشه کاری کن بترسن و بلرزن لئون میگه شما پدرتونو دوست داشتین؟ گرگور میگه گمونم آدم خوبی بود. لئون میگه شما مثل اون نیستین، درست میگم؟ گرگور میگه به کسی نگیا، اما نه ماه هم که بود سعی کردم خیس خیزک از خونه فرار کنم. لئون میگه راه حل دوست داشته شدن اینه که دل مردم رو به دست بیارید. گرگور میگه مثلا مهمونی کباب خورون را بندازم؟ لئون میگه خب این بد نیست ولی من داشتم به یه چیز بزرگتر فکر میکردم. مثلا باطل کردن نفرین گرگور میگه چطور میتونم این کارو بکنم این نفرین تا سوفیا با من ازدواج نکنه باطل نمیشه لئون میگه با شما یا یه یوسکوویچ دیگه گرگور میگه یوسکوویچ دیگه ای در کار نیست من آخرین بازبونده ی این خانواده‌ام لئون میگه مگر اینکه یه پسر داشته باشی گرگور میگه ولی من حتی ازدواجم نکردم. ممکن ادم خبیثی باشم ولی دیگه اهل این کارا که نیستم. لئون میگه لزومی نداره ازدواج کنید. میتونید منو به فرزندی قبول کنید. گرگور میگه من همیشه پسر میخواستم که باهاش ماهی ماهیگیری. پسرم لئون تا وقتی که دلت بخواد لوس و نونو رت می‌کنم. اون وقت دیگه مردم دوستم دارن نه؟ لئون به تماشاگرها اشاره میکنه. میگه که همین الانم هم دوست دارم ببین گرگور به تماشاگران نگاه میکنه و با خوشحالی میگه متشکرم از همهتون متشکرم همتون عروسی پسرم دعوت میکنم از صحنه بیرون رن تا اسناد فرزندخونگی رو امضا کنن از اون طرف اهالی روستا میان و بسات عروسی رو با خودشون میارن همه خوشحالن و بهترین لباسشون رو پوشیدن اسنیتسکی میگه که بلاخره نفرین از بین میره. اسلوویچ قصاب میگه فکرشو بکن نفرین از بین بره بعد بفهمم کلان از اول آدم کودنی بودم. لنیا مادر سوفیا به کونت گرگور میگه که شما حتما خیلی به پسرتون افتخار میکنید. گرگور با خوشحالی میگه اون ده دقیقه است پسرم شده و تو این مدت هیچ عزیت هم نکرده. سوفیا که لباس عروس پوشیده همراه با دکتر وارد میشه. قاضی میگه دوستان عزیز امروز در این مکان گرد آمده ایم. تا شاهد پیوند مقدس دو روح باشیم تازه دامات جلو بیاد آیا شما از امروز به بعد حاضرین سوفیا رو به همسری بپذیرین؟ لئون میگه میپذیرم قاضی میگه و سوفیا شما حاضرین لئون رو در خوشی و ناخوشی در فراز و نشیب برای تموم عمر به همسری بپذیرین؟ سوفیا میگه بله حاضرم لینیا؟ میگه با این هوشی که دخترم داره میتونه هر دومادی رو به چنگ بیاره. قاضی میگه حلقه رو بکنین تو انگشت عروس. لطفا بعد از من تکرار کنین. با این حلقه ما زن و شوهریم. همه اهالی روستا با هم تکرار میکنن. با این حلقه ما زن و شوهریم. قاضی میگه نه نه نه فقط عروس و داماد بگن. لئون و سوفیا این جمله رو تکرار می‌کنن. قاضی میگه قبل از اینکه وصالت مقدس رو به زبون بیاریم بین شما کسی هست که دلیل و برهانی داشته باشه که لئون و سوفیا نباید به همسری هم دیگه در بیان. گرگور یه دفعه میگه که خب شاید یه چیز ریزی وجود داشته باشه این پسر بچه‌ی من نیست لئون میگه چی دارین میگیم پدر گرگور میگه خیال کردی من خولم؟ چرا باید از یه همچین احمق کوچولوی با دست بکشم اوراق فرزند خوندگی همگی باطلند تو اونقدر به هم اعتماد داشتی که حتی نخوندیشون من اونو به فرزندی نپذیرفتم طلاقش دادم ما نه تنها پدر و پسر نیستیم بلکه حتی زن و شوهرم نیستیم لنیا میگه که خدای من در واقع دخترم با یه زن مطلقه ازدواج کرد قش میکنه و توی بازوهای شوهرش یعنی دکتر میفته سوفیا میگه لئون اینم یه قسمت از نقشه است؟ لون جواب میده نه سوفیا. متاسفم گرگور میگه ولی نه ترسین دوستان عزیزم ممکنه من یه مار خطرناکی کینه توز باشم ولی آیا یه یست که نیستم امروز یه جشن عروسی برپاست دکتر جان تو هم قول دادی دخترتو بدی به یه یوسکوویچ و من اینجا تنها یوسکوویچ واقعیم یال خود خطبرو بخون قاضی میگه که متاسفم دخترم صوفیا رو میبره میذاره کنار گرگور و شروع میکنه خطبه رو. عزیزان، گرگور وسط حرفش میپره. میگه او اینجا شنیدیم، من میپذیرم، از این بپرس. قاضی میگه و شما سوفیا کونت گرگور رو تا پایان عمر به همسری خود قبول دارید؟ لنیا میگه بگو عزیزم، سروتمند و شیک میشی، این بهتر از خوشبختیه. سوفیا میگه خدا حافظ لون، خدا حافظ برای همیشه. میپذیرم. قاضی میگه پس بنا به اختیاری که در مقام قاضی ارشد روستای کلینچیکوف به من داده شده، لئون میگه پس شما اون قسمتی که اعتراض داریم و اینا رو نمیگین؟ من مخالفم. قاضی میگه بنا چه دلایلی؟ لئون میگه بنا این دلیل که من هنوز نامه فوریمو دریافت نکردم. لئون نامه رو از میشیکیم میگیره و همه جز گرگور دورش حلقه میزنن و گوش میدم. لئون میگه متاسفانه خبر بدیه. عموم که آخرین نفر از خاندان ما بود، فوت کرد. تو نامش برام نوشته که تمام بدبیاریاش بیاریاش به خاطر نیاکان دورش بوده. حتی با اینکه اسمش رو عوض کرده و گذاشته تولچینسکی، بازم از دست سرنوشت نتونسته فرار کنه. دکتر میپرسه قبلش اسمش چی بوده؟ لئون میگه یوسکوویچ کریگور کنان میگه که امان از دست این فامیلای دور دردسرساز. ولی واقعا تو نامه چی نوشته بود؟ نامه نامه بدهکاری شهری لئون به دانشگاهش بود. بالاخره مراسم عروسی انجام شد و لئون و سوفیا زن و شوهر شدند. صدای قررش رعد اومد. همه جا تاریک و بعد روشن شد. همه روی زمین افتادند. جز لئون که اونها رو تماشا می کرد. و میشیکین بیدار شدند. همدیگر رو نگاه کردند. میشیکین گفت من می ترسم سوال کنم. اسنتسکی گفت یالا دیگه بپرس. میشیکین گفت ولی اگه اشتباه بگیم چی؟ اسنتسکی گفت بپرس. بپرس. میشیکین گفت: گربه. اسنتسکی گفت: قفره بهه. هه. میشکین گفت: وای خدای من این یه معجزه است. اسنتسکی از میشکین پرسید: 5 تا پایتخت دنیا رو نام ببر. میشیکین گفت: آتن، بخارست، قاهره، لندن و قس قص... قص... لئون گفت تا میتونی بگی؟ میشیکین گفت قسطنطنیه نفرین باطل شده بود لئون رو میکنه به مردم روستا در اون لحظه و میگه که مردم کلینچیکوف شما هم شدید مثل مردم همه شهرهای دیگه بعد از باطل شدن نفرین مردم روستا راهای مختلفی رفتن آماده شدند برای تمام فراز و های زندگی عادی. مثلا قاضی بعد از دو سال کار قضاوت با بت پرداخت رشوه واسه حمایت سیاسی مجرم شناخته شد. دو سال توی زندون سپری کرد و بعد با فروش کتاب خاطراتش پول دار شد. میشکین کار خدمات پستی رو کنار گذاشت و نویسنده شد. داستان 600 صفعی نوشت راجع به نفرین کلینچی کفت. که متاسفانه داستانش تو اداره پست. گم و شد اسنتسکی با حوش تازش رو پیدا کرد پشماشونو چید و شد یه ثروتمند نیکوکار کند یوسکوویچ محبوب شد الهیات خوند و تبدیل به یه راهب محلی شد سلوویچ قصاب چهار تا مغازه قصصابی دیگه هم تو همین روستا خرید که خب این روستا با توجه به جمعیتش و مساحتش یه قصابی بیشتر لازم نداشت برای همینم برشکست شد و بهش ثابت شد ترسش درست بوده و واقعا جدا از نفرین آدم کودنیه مادرزن لئون یعنی لنیا اولین شهردار زن کلینچیکوف شد بعدش هم شد کنسول بخش شمالی اوکراین شوهرش فقط با گرفتن وقت قبلی میتونه ملاقاتش کنه دکتر زابیرسکی هم به عنوان بهترین پزشک سرتاسر سر روسیه شناخته شد و رفت که بشه پزشک مخصوص خاندان سلطنتی. و سوفیا. سوفیا یه معجزه است. ذکاوتی داره که توی کتابا هم پیدا نمیشه. اون معلم لئون شد و بهش یاد داد هیچ نفرینی نمیتونه قلب پاک و عشق واقعی رو نابود کنه اما خود لئون لئون به معلمی ادامه داد و زندگیش رو وقف آموزش به آدمای نادون کرد هرچی نباشه توی دنیا جاهایی مثل کلچینکوف زیاده. مشنگ ها اونقدر احمقانه، خوشقلب و مناسب برای همه نوشته شده که وقتی نیاز به یه چیز ساده و حال خوب کنداشته باشید واقعا ارزش خوندن یا شنیدن رو داره با این نگاه مشنگ ها اثر بسیار دوست داشتنی و سبکیه ولی میشه برداشت های هم ازش کرد استعاره های مشنگ ها اونقدر واضح و مشخصه که من فکر نمی کنم هیچ کدومش رو از دست داده باشید این استعاره ها مخصوصا در پرده دوم به مسائل زیادی که احتمالا در اون دقدقه های سایمن بودند اشاره می کنند نکته دیگهی که به غیر از استعاره ها توجه من رو جلب کرد شکستن مدام دیوار چهارم در نمای بود که به نظرم شاید در این پادکست و این سبک خانش نمای و حتی توی نمایشنامه‌ی خانی هم خودش رو نشون نده ولی در اجرا، اجرا روی صحنه میتونه به تنز و ارتباط گرفتن بیشتر نمایشنامه با مخاطبانش که توی سالن نشستند کمک کنه. ما هم برای اینکه به متن اصلی وفادار بمونیم، سعی کردیم این ساختار رو در متن خودمون حفظ کنیم. در زم من رو ببخشید اگر بعضی از اسامی رو جایی اشتباه گفتم، بد گفتم. اسامی بر حال روسی بودند و یه مقداری ادا کردنشون سخت بود. نمایشنامه برخس خیلی از نمایشنامه‌هایی که توی پادکست ما روایت میشه آنچنان مهم و تأثیر گذار نیستند در تاریخ نمایش و تئاتر. آنچنان هم عمیق و تأمل برانگیز نیست. هرچی بیشتر سعی کنیم از دل نمایشنامه معنا و مفهوم بیرون بکشیم قدرت دادن به نداشته‌های نمایشنامه است اما خود نمایشنامه به تنهایی اصلا اثری نیست که نش جدیش گرفت یا بیارزش به حسابش آورد نه فقط به نظر متن به کافی خودش رو توضیح میده نیاز به فرامت نو توضیحات بیشتر و تحلیل و نقد نیست با اینکه نمایشنامه سبکش با سایر آثار سایمن متفاوته و دنیای متفاوتی هم داره ولی اثر خوبی بود برای ورود با آثار سایمن و اگه دوست داشتید میتونید برید سراغ بقیه آثارش که در مقدم معرفی شدند خودتون هم میتونید برید نمایش هاش رو پیدا کنید و بخونید. بعد از اولین اجرای مشنگ ها توی سال 1981 مقاله توی نیویورک تایمز منتشر شد که این نمایش رو یکی از ترین کارهای سایمن دونست. نیویورک تایمز نوشت در این نمایش بازی های و تکراری فراوانی بود شوخی های زیادی در مورد حماقت وجود داشت که هر کسی می تواند آنها را بسازد اما از اون طرف منتقد دیگه یه جای دیگه نوشت این تمثیل ساده، تنین خاص و شاید تأصف باری در فضای سیاسی و فرهنگی امروز دارد شما هم اگر نظر و نقدی در باره پاتکست یا نمایشنامه مشنگ ها دارید برامون در کست باکس یا در اینستاگرام بنویسید. بیتونه شروع یک گفتگوی خوب باشه. از سحمین برغایی، مهدیس سفری و شکی با اصدی سپاسگذارم که کمک کردن این قسمت هم به گوش شما برسه. پادکست علف رو به دوستانتون معرفی کنید و حسابی مراقب خودتون باشید. من مهدی خدادادی هستم و اینجا قسمت دوم پادکست علف هم به پایان رسید امیدوارم شما هم عشق رو در زندگیتون پیدا کنید این نقش ماند از غلمت یادگار عمر میت نایت کست